افسانه یک کچل ها داستان زیبا به قلم حمید رضا خزایی ارائه شده از کانال هزار افسان مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده ماه بانو جانی کل یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود. پسر پادشاهی بود که در جلوی قصر بازی میکرد. پیر زنی با کوزه آب رد میشد. شد. بنده خدا خسته شده بود. کوزش رو زمین گذاشت تا خستگی از تنش بیرون بیاد. پسر پادشاه از روی بچگی و نادانی سنگی رو برداشت و به طرف پیرزن انداخت سنگ به کوزه آب خورد و کوزه شکست پیرزن بیچاره به کوزه شکستش نگاهی کرد و دلش شکست و آهی کشید و به پسر بچه گفت الهی عاشق دختر نارنج و ترنج بشی نه دعوایی کرد نه داد و بیدادی بندی خدا راهش رو کشید و رب. نفرین پیرزن همیشه همراه پسر پادشاه بود چه توی خواب و چه توی بیداری که الهی عاشق دختر نارنج و ترنج بشی گذشت و گذشت تا پسر پادشاه بزرگ شد و به سن تکلیف رسید همیشه از خودش می‌پرسید دختر نارنج و ترنج کیه از می می‌پرسید بهش می‌گفتند نمی‌دونیم یه روز بیخبر از همه اسبش رو سوار شد و راه افتاد تا بره و دختر نارنج و ترنج رو پیدا کنه. پشت به شهر رو رو به بیابون رفت و رفت. روز و شب می رفت و می رفت. دیگه حساب روز و ماه و سال از دستش بیرون رفته بود. نمیدونست که چند وقت تو کوه و دشت و بیابون سرگردون شده؟ روزی از روزا که سرگردون تو بیابون میگشت دید پیرمردی روبروش ایستاده پسر سلام کرد پیرمرد گفت ای پسر پادشاه به کجا میری پسر گفت از کجا فهمیدی که پسر پادشاه هستم پیرمرد جواب داد از شکل و شمایلت نگفتی که کجا داری میری و دنبال چی میگردی پسر پادشاه گفت به دنبال دختر نارنج رو ترنج میرم پیرمرد جواب داد خیلی رفتن و برنگشتن. خلاصه پسر پادشاه مجبور شد اتفاقی رو که در بچگی براش افتاده و نفرین اون پیرزن رو برای پیرمرد تعریف کنه. و گفت که سالهای سالی که آب خوش از گلون پایین نرفته باید دختر نارنج و ترنج پیدا کنم پیرمرد مرد خندید و گفت حالا که نمیخوای برگردی پس از این راه برو نمیدونم چند وقت تو راه خواهی بود اما در ته همین راه یه چهار باغه باغ اول استخر آبیه که آبش تلخ و بد از آب استخر بخور و بگو به چه آب خوبی استقراه میده تا رد بشی باغ دوم باقیه که پر از بوتههای خاره که گلهای خار بوی بدی میدن بگو به به چه گلهای گل گلهای خار را میدن تا عبور کنی تو باغ سوم خری و سگی رو بستند جلوی سگ علف ریختن جلوی خر استخون جای علف و سخون رو عوض کن. تو باغ 4م که یک درش بازه و یه درش بسته. در بسته رو باز کن و در باز رو ببند. درخت نارنج و تورنج ته باغ آخره. نارنج و تورنج رو بچین و فرار کن. به سر پادشاه به همون راهی که پیرمرد بهش گفته بود رفت. رفت و رفت تا آب چهار باغی رسید که پیرمرد مرد بهش گفته بود تو باغ اول مشتی آب تلخ و بدبور و خورد و گفت بهبه چه آب خوبی آب راه داد و پسر پادشاه عبور کرد تو باغ دوم گفت بهبه چه گلهای زیبا و خوشبویی های خار راه دادن و پسر پادشاه به باغ سوم رسید علف را جلوی خر و استخون رو پیش سگ گذاشت تو باغ چهارم در بستر رو باز کرد و در باز رو بست سه تا نارنج و ترنج به درخت چسبیده بودند تا نارنج‌ها رو از درخت چید صاحب باغ که دیوی بود بزرگ خبردار شد از خونه بیرون دوید و دید آدم میزادی، نارنج و تورنج رو چیده و داره فرار میکنه. صدا زد آی در بسته بگیرش. در گفت یه بار شد که منو بز کنی نمیگیرم. داد زد آی در باز تو بگیرش. در باز گفت یه بار شد که منو ببندی نمیگیرم. پسر پادشاه از درها رد شد. دیو اومد که رد بشه درها جلوشو رو گرفتن. دیو زد و درها رو شکست. داد زد آی خر تو بگیرش. خر گفت یه بار شد که جلوم علف بریزی. هی hey استخون، هی hey استخون. داد زد سگ دیوونه تو بگیرش. سگ گفت یه بار شد که برام استخون بریزی. همش علف، همش علف. تا حالا دیدی که سگ علف بخوره؟ پسر پادشاه از اونجا هم رد شد سگ جلو دیو رو گرفتن. دیو زد و خرستک رو کشت. داد زد آی گل خار، آی گل بد بو تو بگیرش. گل خار گفتند یه بار شد که بگی گل زیبا، گل خوش بو نمیگیرم. پسر پادشاه از اونجا هم رد شد. بوده خار راه دیو رو بستند. دیبم زد همه ی خار رو از جا کند. از بخت پسر پادشاه به لب آبهای آب گندیده رسید. داد زد آی آب گندیده بگیرش. آب گفت یه بار شد بگی آب زلال. نمیگیرم آب راه داد و پسر پادشاه از اونجا هم عبور کرد. دیو اومد که رد بشه آب جلوش رو گرفت دیو دست و پا زد و توی آب غرق شد پسر پادشاه همین جور که تو بیابون میرفت با خودش گفت از کجا معلوم پیر مد راست گفته باشه بزا ببینم یکی از این نارنج‌ها رو بشکنم ببینم توش دختر هست تا نارنج رو شکست یه دختر از وسط نارنج بیرون اومد زد آب آب آبی نبود که بهش بده دختر سوخت و خاکسترش رو باد برد پسر پادشاه راه زیادی اومد و آب پیدا نکرد دوباره دو دل شد با خودش گفت اگه این دوتای دیگه دختری نداشته باشن اون وقت چیکار کنم دو دختر نارنج و تورنج از توش بیرون امد نارنج دوم که دختر از بینش بیرون اومد، داد زد. آب، آب، آبی نبود. دختر سوخت و خاکسترش رو باد برد. پسر پادشاه خیلی ناراحت شد. گفت دیدی با دست خودم این دوتا دختر رو نابود کردم. حالا فقط یه دونه نارنج براش مونده بود. پسر پادشاه اومد و اومد تا به چشمه آبی رسید. درخت چناری اونجا سبز شده بود. پسر پادشاه لب چشمی نشست و نارنج سوم رو شکست. دختری کوچک از بینش بیرون اومد و گفت آب، آب. پسر پادشاه دختر برداشت رو توی چشمی آب زد و بالا آورد. دختر بزرگ شد و زیبا مثل پنجهی آفتاب پسر پادشاه حیفش اومد که دختر نارنج و تورنج رو بی سر و صدا به شهرش ببره. به دختر گفت تو همینجا بمون تا برم پدر مادرم قوم خیش ها رو با خودم بیارم و با دم و دستگاه تو رو به شهر ببریم. دختر گفت باشه هر چی تو بگی. پسر پادشاه وقت رفتن انگشتریش رو به دست دختر نارنج و تورنج کرد. دختر زشتی به اسم جانی که کچل بود در همون نزدیکی ها خونه داشت مادر به جانی کچل گفت آی دختر ورده این ظرف رو ببر لب چشمه بشور دختر کچل ظرف رو ورداشت و لب چشمه خم شد تا ظرف ها رو توی آب چشمه بشوره که یهو چشمش به عکس دختر نارنج و ترنج افتاد با خودش گفت اوه، مو به این قشنگی حالا بیام و ظرف بشورم همه ظرف رو شکست و رفت خونه مادرش گفت ظرف رو شستی دختر گفت من به این قشنگی تو میگی برو ظرف بشور مادرش گفت کی گفته تو قشنگی تو از خر هم بد شکلتری. بردار بچه رو ببر لبه آب و روش رو بشور دختر کچل بچه رو بغل کرد و اومد لبه چشمه همچین که خم شد تا روی بچه را رو به شوره عکس دختر نارنج و تورنج رو تو آب دید خواست بچه رو تو آب بندازه که دختر نارنج و تورنج از بالای درخت داد و بیداد کرد آها چه کار میکنی؟ دختر کچل سرش را بالا گرفت و دختر نارنج رو دید که بالای درخت نشسته ازش پرسید تو کی هستی؟ دختر جواب داد عروس پادشاه دختر کچل گفت بالای درخت چیکار میکنی؟ دختر نارنج و ترنج گفت منتظرم که پسر پادشا بیاد و منو با خودش ببره دختر کچل تا اسم پسر پادشا روشنید، بی اختیار دست و پاش لرزید یهویی یه بچه رو بغل زد و رفت به سمت خونه بچه رو این داخت مادرش رو مادرش گفت آهای خیلی ندیده چیکار میکنی؟ کچل توجهی نکرد. اومد سر چشمه. گفت آهای دختر. میذری بیام به سر درخت. میام بالا. دختر گفت بیا. جانی کچل رفت بالای درخت. زبون گرم و نرمی داشت. از این ورون بر صحبت کرد. آخر سر گفت. دختر جان لباس را تو می دی؟ یکم به تنم بکنم دختر نارنج و ترنج پرسید برای چی؟ دختر کچل گفت می خوام ببینم مثل تو قشنگ میشم. دختر نارنج و ترنج خندید و گفت اگر به رخت های من زیبا میشی بیا اینم لباس های من دختر کچل لباس ها را تنش کرد و پوشید بعد به دختر نارنج و ترنج گفت بذار موات شونه کنم دختر جون دختر نارنج و ترنج گفت شونه کن اما به گل سرم دست نزنیا دختر کچل همینجور که موهای دختر نارنج و ترنج رو شونه میکرد یه دفعه گل سرش رو باز کرد و به سر خودش زد تا گل سر از موهای دختر نارنج و ترنج باز شد دختر نارنج و ترنج تبدیل به کبوتری شد و به آسمان پرکشید چند وقتی گذشت پسر پادشاه با ساز و دهول و جماعت اومدند کنار چشمه که دختر نارنج و ترنج رو با خودشون ببرند. دهول و سرنا می زدن. جمعی می و جماعتی به تماشا ایستاده بودند. داد زد دختر نارنج و تورنج بیا دختر کچل از درخت پایین اومد وای دختری عجیب قریب و زشت پسر پادشا تعجب کرد گفت تو که سیاه نبودی دختر گفت از بس که تو آفتاب موندم پسر پرسید برای چی دندونات ریخته دختر جواب داد از بس که پوست درخت خوردم پسر گفت تو که کچل نبودی دختر جواب داد از بس که بی غذا موندم موهام ریخته پسر گفت چشمات برای چی چپ شده دختر گفت از بس که به راه نگاه کردم که کی میای دوربری ها همه میخندیدن و با خودشون میگفتن برای خودش کار درست کرده دختر نارنج و تورنج پیدا کرده چه رنگ و روی چه قد و بالایی چه چشایی <تصفح> چه گیسای بلندی و کلی مسخرهش میکردن. مردم همینجور با خودشون صحبت میکردن و به مسخره کردن دختر و پسر پادشاه مشغول بودند پسر پادشاه ای نداشت دختر کچل رو سوار اسب کرد و قافله با دخول و سرنا به راه افتادند همینجور که تو راه میرفتند کبوتری اومد و سر شونه پسر پادشاه نشست دختر کچل که میدونست دونست کبوتر کیه و چیکار داره کبوتر رو کیش کرد. کبوتر پر زد و روشونه دیگر پادشاه پسر پادشاه نشست. دختر کچل دوباره کبوتر رو کیش کرد. پسر پادشاه گفت چیکارش داری؟ برای چی کیشش می کنی؟ هیمون گناه داره. دختر کچل گوش به حرف پسر پادشاه نداد. هی کبوتر رو کیشش می کرد. کبوتر همینجور جور بالای سر قافله چرخ میزد و به جایی نمیرفت. اومدن تا رسیدن به شهر و رفتن به قصر پادشاه. چند وقتی که گذشت، روزی پسر پادشاه تو باغ قصر قدم میزد. دید چند تا از درختای باغ خوش شدن باغبان رو صدا زد و تو تشر کرد که برای چی درختها آب ندارن؟ برای چی بهشون آب ندادی که اینجوری بشن؟ حالا به درختها به باغ نرسیدی حالا همهشون خشک شدن باقبون گفت چجوری نرسیدم پسر قبله عالم کبوترییه که این مدلیه و روی هر شاخهای که میشینه شاخه خشک میشه پسر پادشا گفت راست میگی باقبون جواب داد بلی پسر قبله عالم خلاصه پسر پادشا گفت هر جور هست باید کبوتر رو بگیرید باغبون و نوکرای پادشاه، شاخه های ها غیر زدن کبوتر روی شاخه درخت نشست پاهاش به غیر چسبید و نتونست فرار کنه نوکرا رفتن و کبوتر رو گرفتن به سر کبوتر رو تو قفس کرد و برد خونه کچل تا چشمش به کبوتر افتاد فهمید که دختر نارنج و ترنج اومده خودش رو به مریضی زد و حکیم رو دید که به پسر پادشاه میگه علاج درد زنت گوشت کبوتره پسر پادشاه رضایت نمیداد که کبوتر رو بکشن اونقدر زیر گوشش خوندن تا رضایت داد کبوتر رو کشتن خون کبوتر به روی زمین ریخت و از رد خون درخت گلی روی دختر کچل تا درخت پرازگل رو دید با خودش گفت هنوز ریشش هست ی که پسر پادشاه به شکار رفته بود دختر کچل به نوکرها گفت درخت گل رو از ریشه در که امروز خمیر داریم نوکرها درخت رو از ریشه در آوردند تیکه تیکه کردن و تو تنور سزوندند تو همسایگی قصر پادشاه پیرزنی خونه داشت پیرزن گاوچرون بود صبحها به دنبال گاوها به صحرا میرفت و غروب برمیگشت امروز دم غروب اومد در قصر شاه که آتیش برای سر قلیونش ببره گفتن چی میخوای گفت آتیش برای سر قلیونم میخوام ببرم بهش گفتن بیا برو وردار پیرزن آتیش و ورداشت و رو چاق کرد دید که دود قلیون تعمی داره از همیشه بهتر صبح مثل همیشه گاوار و برد به صحرا غروب که اومد دید دوروبر خونه رو به هم چیدن پنبه هاش نقش شده و سرفاش شسته شده رفت که قیلیونش رو چاق کنه دید آتیش سر قیلیون هنوز در حال سوختنه. با خودش گفت کی خونمون مثل دست گل کرده؟ کی آتیش سر قیلیونم گذاشته؟ فردا قرو وقتی وارد خونه شد سایه ای رو دید که به سرعت از جلوش رد شد همچین که نفهمید چی بود با خودش گفت گربه بود غریبه بود سایه خودم بود چی بود خونش مثل دیروز از تمیزی برق پنبه پنبه‌ها رو ریسته بودن آتیش سر قلیون هنوز میسوخت. پیرزن شک کرد و با خودش گفت هر خبری که هست تو این خونه باید سر در بیارم و بفهمم کی این کارا رو انجام میده. فردا گاوا رو به صحرا برد جایی پر آب و علفی رو پیدا کرد و گاوار رو رها کرد تا برا خودشون بچرن خودشم اومد خونه تا در خونه رو باز کردید دختری مثل پنجه ی پشت چرخ نشسته و نخ میریسه ازش پرسید تو کی هستی دختر جان؟ از کجا اومدی؟ دختر جواب داد دختر نارنج و ترنج و بلند شد تا به آتیش سر قلیون برسه پیرزن دستش رو گرفت گفت نرو دختر جون همینجا بمون و دخترم باش دختر گفت دشمن دارم ننه جان پیرزن گفت نمیذارم دست دشمنات به تو برسه دختر جون مثل تخم چشام از تو مواظبت میکنم خلاص کلا. کلام دختر نارنج و ترنج تو خونه پیرزن موندگار شد گذشت و گذشت تا زمستون رسید. مردم شهر رسم داشتن که شبی تو خونه بادشا جمع بشن و هر کسی ای بگه. همه اومدن. هر کسی ای گفت تا نوبت به دختر نارنج و ترنج رسید. دختر افثانهی خودش رو گفت. وسط افسانه افسانه که رسیده بود دختر کچل فهمید که دختر نارنج و ترنجه. عصبانی داد و بیداد کرد که آی افسانه اینجوریه تو چی داری میگی تو کی هستی بلنشو برو بلنشو برو خوند پسر پادشاه که شک کرده بود گفت سب کن تا قصهاش تمام بشه قصه که تمام شد پسر پادشاه گفت پس دختر نارنج و تورنج تو هستی دختر سرش رو پایین انداخت دختر کشل دوباره داد و بیداد کرد و گفت اگر اون دختر نارنج و تورنجه پس من کی هستم دختر نارنج و تورنج گفت دختر نارنج و تورنج نشونه داره دختر کچل پرسید چه نشونه دختر نارنج و تورنج دستش رو زیر بغل کرد و انگشتری پسر پادشاه رو بیرون آورد. چشمی پسر پادشاه به انگشتری که افتاد فهمید همه حرفهای دختر نارنج و تورنج راست بوده دستور داد دختر کچل رو با پوست پیاز بسوزونن اون وقت کله و پاهای دختر کچل رو که نیم سوز شده بود تو گهنه پیچید و برای پدر مادرش برستان نوکرهای پادشاه که اومدند مادر دختر کچل تو خونه بود ازش پرسیدند مادر دختر کچل یا همون جانی کچل تو هستی؟ گفت بله نوکرها گفتن اینو از قصر پادشاه فرستادن مادر دختر کچل پیش و گرفت و لب تاقچه گذاشت خودش رفت ظرفو رو بشوره بچهش اومد گفت گرسنمه مادر جون چی بخورم مادر گفت برو خواهرت چیزی از قصر پادشاه فرستاده وردار بخور برای ما هم نگردار بچه رفت و زودی برگشت داد زد ننه ننه بجیر کرده، بغیر کرده جانی کچل ما سوخته و کباب شده مادرش گفت چی داری میگی این بچه هم جفتک میزد و اینو میگفت بجیر کرده، بغیر کرده جانی کچل ما مادر عصبانی شد و بچه رو حول داد بچه تو آب افتاد و خفه شد شوهر زن و منزن تا کی میخوای به لب آب باشی؟ بیا یه چیزی درست کن تا بخوریم. گفت برو دخترت از قصر پادشاه چیزی فرستاده وردار بخور برای ما هم نگردار. مرد رفت و سودی برگشت. دادست زن بیا که وجر کرده و غیر کرده جانی کچله ما. مرد همینو میگفت. وجر کرده وغر کرده زن عصبانی شد و شوهرش رو داد. مرد هم تو آب افتاد و خفه شد. زن با خودش گفت یعنی چی وجر کرده و غیر کرده جانی کچل ما سبکم برم ببینم تو خونه چه خبره بلند شد و اومد خونه تا لایقانه رو وا دید که کله و پاهای دختر کچل رو براش فرستاده به دور خونه را افتاد و هی میدوید و داد میزد وجر کرده و غیر کرده جانی کچل ما بشکن میزد و میخوند تا از قصه افتاد و Mord